فیلم نویسنده و کارگردان عبدالرزا کاهانی بازنویسی نهایی حسین محکام عبدالرزا کاهانی زیگران، پرویز پرستوی این هر هرکی درست کار نکنه از کم میکنم محتاب کرامتی کدوم یکی از همسایی آمند دیده؟ من که صبح میرم شب میرم علی رضا خمسه من دستم اینجا حلیل شده کی بیرون به هم کار میده؟ با حضور فرشته صدر عرفایی یه؟ بمیتون از اینکه بگی پرشه سر بچه خالی میکنی؟ و حبیب رضایی جواد سلیمانی رو چی مید نگه دعوا کردیم موسیقی امیر علی واجد سمیعی تهیه کننده و مجری تر پوران درخشنده آقای سلیمانی روی صندلی در دفتر نشسته و به حرفای شخصی که نمیبینیمش گوش میده آ سلیمانی شما بدونین اینکه خودتون بخواین تاثیر گذشته ای که داشتین مراسم منظر رو بیشتر دوستداری توصیه می اینه که تالار رو تعطیل کنید کار دیگه ای بکنید یا بدید کسی وسطتون بگردونه سرحت کنید به نظرم ادامه این کار اقبت خوبی براتون نداشته باشه سلیمانی از دفتر املاک باور بیرون میه از بین ماشین ها یه موتور و یه اتوبوس رد میشه و به طرف دیگه خیابون میره و وارد تالار خودش میشه مجلس ازای برپاست پیرزنی جلو تالار سیگار میفوشه سلیمانی کتش رو در میاره و پشت سندلی گردونش میذاره سندلی رو چرخ میده و میشینه بدجوری اخماش تو همه یکی از کارکنانش زن قامتی با روسری غذای سلیمانی رو توی سینی میاره روی میز مزنه نگاهی به سلیمانی نگاهی به بنگاه اون طرف خیابون میندازه سلیمانی نگاهی به زن نگاهی به بنگاه و دوباره نگاهی به زن میندازه زن متوجه اون شده میره سلیمانی فقط به غذاش نگاه میکنه عکس مردی رو میبینیم که به تازگی درگذشته و مراسم برای اون گرفته شده. سینی حلوا پای عکس و دوشم در کنارش. ها مشغول خوردن غذا هستند. پسر جوون کارگر با صندوق نوشابه سر میز میاد. صندوق نوشابه رو به همکارش میده و به سمت آشپزخونه میره. سلیمانی هنوز غذا نخورده. کاسه رو برمیداره و نگاهی به اون میکنه. زنی بولاغه <سؤال> که پنج بشقاب چلو کباب دستش از پله پایین میاد و دخترش 7 ساله شروع تا زن ور قسمت زنونه میشه و پذیرایی میکنه در قسمت مردونه هم دو مرد مشغول پذیراییه آقا یعنی شغله ده زن ایتالیا تام شده نه تامو شده بله شیشه نوشابه کمی داره بر می داره و روی زمین می‌ریزه. مرد مهمان شاکی از جاش بلند میشه و به طرف سلیمانی که توی فکره میره می زن قد بلند و بچهش از پله زیرزمین بالا میان بچه رو بغل میکنه پای بچه خورد به بشقابایی که زن دیگه میخواست بیاره این سلیمانی رو عصبانی میکنه و سینی قضاش رو عقب میزنه توی دفترش می نویسه فیروزه بشقا فیروزه بشقا شکسته رو جمع میکنه و زن دیگه بچهش رو بغل کرده آشپز توی پله اونارو نگاه می‌کنه. آشپز دست چپش بی حرکتی. با یه دست به سختی برنج توی بشقا با مریزه. زن کتاق آمد که ظاهرا همسر آشپزه با دختر بچه توی آشپز خونه میاد. دختر رو روی پیشخون میذاره و به شوهرش کمک میکنه. به جون. بابا. زن س سیخ کباب میاره و توی بشقابم میذاره. زن کبابا از سیخ در میاره. مرد برنج میریزه. سلیمانی توی آشپسخونه اومده. فیروزه از مقابلش رد میشه. سلیمانی با اخم اونها رو نگاه میکنه. فیروزه بچه به بغل میخواد خارج بشه که با سلیمانی روبرو میشه. پیرزن سیگار فروش سیگاراشو جمع میکنه و توی کیف دستی مهندسی میذاره و درشو میبنده مجلس توی تالار به پایان رسیده غذاها سالادا، نوشابه ها خورده و نیم خورده روی میزه سلمانی با پول شمار پول میشماره تا دو هزار تومنی پولا رو مرتب میکنه یه لحظه شک میکنه دوباره میشماره باز شک از اول پیرزن سیگار فروش وارد تالار میشه کیف و رو گوشهی میذاره خدا بذارم سلمانی نگاش میکنه و شمارش همون بسته بولو از سر میگیره شب شده هر پنج کارگر مشغول خوردن غذا هستن یکی از کارگران که سیبیل فرموند چرخی داره پامیشه تا همکار جوانترش بشینه فیروزه نشسته و به بچهش غذا میده دختر بچه به طرف زنه دیگه میره و توی بغل اون میشینه محبیو. محبیو. محبیو. همسر زن هم اون پشت نشسته و قضاشو میخوره فیروزه با شیلنگ آب کفشوی رو میشوره حالا با همون کفشو کف تالا رو تمیز میکنه بقیه هم میزه رو مرتب میکنه آشپز با یک دست گلدان و ظرف شیرینی میاره و روی میز میزه شمهای مربوط به مراسم رو فوت میکنه یه شبه دیگه حالا در تالار سلیمانی عروسیه و سلیمانی که گویی حوصله سر و صدا و شادی رو نداره دم در کنار ماشین عروس ایستاده مهمان ها وسط تالار مشغول شادیان و برف شادی میزنند کارگر مشغول کار هن. کارگر جوان که بشخابارو از روی میز برداشته با تخدیر به پسر جوونی که وسط نگاه میکنه و میره یک پیرمرد هم وسط هست و با بقیه همراهی میکنه هیچ کدوم از کارگرا از شادی مهمونا لذت نمیبرن فیروزه بچه به بغل میره تا شیرینی تعارف کنه یکی از کارگران مشغول جمع کردن بشقاباست که چشمش به بنگاه باور میفته که داره تعطیل میکنه و سلیمانی همچنان دم در ایستاده. جشن به پایان رسیده آشپز با دست راستش پیشبندش رو باز میکنه کلاش رو از سر بر میداره کارگر جوون یه چاقو بر میداره و پشت کمرش توی شلوار پنهان میکنه اون یکی کارگر هم لباساشو عوض میکنه فیروزه هم لباسای کارش رو عوض کرده چادر بر سر دخترش رو بغل میکنه و آماده رفتن میشه هر دو کارگر کرکده یه تالا رو پایین میارن و سلیمانی به اونها نگاه میکنه ق کارگر جوانتر ظرف یک بار مصرف که توی یک کیسه هست بر و میره اون یکی هم کلیدو به سلیمانی میده سلیمانی میگیره و قفل رو چک میکنه خب قفله هر دو میرن و یک کیسه غذا کنار دیوار جا مونده سلیمانی وارد ساختمون بغل تالار میشه که خونشه و کارگر هم میاد و کیسه غذاشو بر و سمت وانته توسی رنگ میره در رو باز میکنه و پشت فرمون میشینه فیروزه و بچهش جلو نشستن و کارگر جوانتر پشت بانت. سلیمانی دست پولی رو کنار گلدون کوچک سیاهی میذاره و گلدون رو بر میداره. گلدون رو بر میگردونه و کلیدی از توش بر میداره. میذاره سر جاش. شک میکنه. دوباره گلدون رو تکون میده. خالیه. پول رو توی گافتندوق میذاره و قفل میکنه. باز هم شک. در گافتندوق باز میکنه و به پولاش نگاه میکنه و. دوباره درشو میبنده محل زندگی فیروزه واند سر ای، باریک در جنوب شهر توقف میکنه که دو مرد سر کوچه ایستادن و سیگار میکشن کارگر جوون سریع از پشت وانت پایین میپره فیروزم بچهشو از ماشین پیاده میکنه حالا حرسه به راه میفتن و از مقابل مردا رد میشن منظور راننده اینه که خودش میره بیا سوار شد پسر جوون برمیگرده به وانت. فیروزه و دخترشم به سمت خونه میره کارگر جوون از وانت پیاده میشه و وانت میره لحظه دنبال وانت میره که مطمئن بشه رفته بله برمیگرده و از ظرف غذا به دست وارد ترمینال غرب میشه کارگر جوان سیگار به لب به شاگرداننده نزدیک میشه. عزیز. هر دو با هم سلام علیکم میکنن. کارگر جوون ظرف یک بار مسافق غذا رو به کمک راننده میده. حالا سوار اتوبوس شده و آرام و مستقیم به ته اتوبوس قسمت خواب میره سلیمانی با لباس خونه تنها لبه تخت نشسته و قرصی رو میخوره. دمپای رو فرشیش رو در میاره و روی تخت میشینه و به بالش تکیه میده. نگاهی به دمپاییش میکنه. یکی از اونا کمی عقبتره. با وسواس زیاد اونا رو مرتب میکنه و بعد به بالش تکیه میده. آگرای جوان که تا حالا خواب بوده از پنجره اتوبوس سر بیرون میکنه تهرانه، تهران تهران تهران تهران تهران آقا تهران تهران وضا رسیدین نوابه کوچه سینما نوق ازوین نقه بجوم دیگه این سلیمانی بیدار شد آخه تو خالی دارم تهران آقا بود بود تهران تهران تهران آقا تهران صبح شده تهران کارگر دیگه تالار با وانتش دم در ترمینال غرب منتظر نشسته. کارگر جوان از راه میرسه و سوار میشه. هنوز خوابالوده. تالار همسر آشپز دو تا لیوان برمیداره کارد و چنگال. بشقاب. نون و همه اونا رو توی سینی که دو تا لیوان چای و شکر هست میذاره با دلخوری سمت همسرش میره. همسرش روی زمین کف تالار کنار میزهای به ریخته شب گذشته نشسته زن هم با سینی صبحانه کنارش میشینه کارگر جوون لباس کارشو میپوشه برای کار آماده میشه فیروز هم لباسهای کارشو پوشیده و از زیر زمین بیرون میاد و از جلوی اون رد میشه آشپز وارد آشپزخونه میشه و پیش همسرش و دختره فیروزه میره کارگر دیگه بلا تکلیف روی جعبه نوشابه نشسته با شیشه نوشابه ها ور میره. کارگر جوان لباسای اونو میاره توی بغلش میرزه و خودش سر یخچال میره آقا سلیمانی که با کسی سلام ولی نداره بونگا چه کار میکرد شب تولا هم تو هم تگیرم سلیمانی پشت میزشه در گافتندگشو میبنده مقداری پول باید باشته. سلام آقای سلیمانی سلام خوا اجازه. ایشون خریدار هستن. بازی دوما. بفر بفرمایید. این چم این 480 متره. هست. شما هم که میخواین خرابش کنیم؟ کارگر جوون از پورتل لغزاله به تازه واردا نگاه میکنه. شما 24 واحدی بسازین. من درستش میکنم. کارگر ده. جوون که حرفای اونها رو شنیده، دون دون از تالار بیرون میاد و سمت ماشین خریدار میره. از پشت کمرش همون چاقو رو در میاره و لاستیک ماشین رو با چاقو پاره میکنه با احتیاط نگاهی به اطراف میکنه چاقو رو پنهان میکنه و میره توی تالار که با بنگاهی و خریدار مواجه میشه و از کنارشون رد میشه سلیمانی هم پشت میزش نشسته میشن هره برو به عمارو عمارو ویژن راه میفته اما می فرشته و همه به حضور سلیمانی آمدند میسه هم کارگر سیبیلی ویژن فرخ آشپزتانا فیروزه و دخترش و بالاخره فرشته همسر فرخ ویژن نگاهی به ماشین خریدار مینازی که داره چرخ ماشینش رو عوض می‌کنه و از کار خودش راضیه تا بیس روزیه میخوام تالار رو تحتیل کنم همه مبهود و ناراحت به سلیمانی نگاه میکنه گفتم زودتر بگم دو مالی کاری دیگه باشی سلیمانی دسته پول داره. بیشن بیشن به ناچار جلو میره و پولشو میکنه. میسان. میسان میسم میسم هم همین سلیمانی دست پولی رو در دست میگیره. فیروزه بچه به بغل جلو میره، پول رو میگیره و میره. سلیمانی دست پول دیگر رو در دست میگیره. فرشته جلو میره که بگیره. فرخ با همون دست راستش بهش اشاره میکنه که نه، برو. فرشته میره و فرخ خسته روی مبل جلوی میز سلیمانی میشینه. حرفی نمیزنه. سلیمانی نگاهی بهش میکنه. چه؟ برم. من دستم اینجا حلیل شده با این دست کی کی بیرون به هم کار میده بیمه هم که ندارم خسارتی چه میدم توی این همه سال بچه دار نشدن که تو تالار بمونم خسارت چی خب باسه چی بچه دارن شدی خب میداختیم بیرون دیگه معلومه که میداختنه بیرون فروخ بغز میکنه بلند میشه و سلیمانی هم رفتن اونو نظارگره یه میستوز هر که درست کار نکنه از روغش کم میکنم کسی حرفی نمیزنه سلیمانی هم بقیه پورا رو توی گاف صندوق میذاره میسم جلوی میز سلیمانی میاد خرید داریم و سلیمانی بخشی از پول رو مقداری میشماره و به میسم میده میسم میره ببینم میسم برمیگرده و پولا رو به سلیمانی میده تا دوباره بشماره سلیمانی مشغول شماردن دوباره میشه میسم ناخداگاه قلمدان روی میزو کمی جا, جا میکنه سلیمانی در زمانش رو مردن میگه نگاهی به میسم میکنه میسم که متوجه شده قلمدان و سر جاش میزره بلخره سلیمانی پولو به میسم میده میسم پولو توی جیبش میذاره و میره سلیمانی هم بقیه پولو توی کشو رو پسری جوان آکارده بر پشت آرام و با احتیاط وارد تالار میشه از چند پله جلوی در بالا میاد و مقابل میز سلیمانی میایسته سلام آقا. سلیمانی سولیمانی سرش پایین و پرسی بله من ساز میزنم میتونم بیام تو مجلس هر روزتون اینجا از هزاز تکتوک که روزی برگذار میشه خب هم اونا اونا معمولاً یکی خودشون دارن بعدش هم این داره میشه به گرشه یکی دو کار واس خود دیگه خب هر ما به تحتیل شدیم میرم برو پسر عزم رفتن میکنه اما لحظه میمونه اگه بیام سرتون شلوع بشه آخه یکم دیر اومدی اتفاقا ما بخوام سرم خلوات بشه پسر متقاعد شده اما ناراحت به طرف پله ها میره نگاهی به سلیمانی میکنه و پایین میره و از در خارج میشه میژن در حال نوشابه خوردن اونا رو میبینی دهتومان داری خیلی میگیری یا مرد حسابی خر میبره ای باره دهت من که من دارم از تو میگیرم اگر چه خبر حالا سه بار سو با هم کنار میان میسم خارج از تالار با وانت برای خودش کار میکنه بریم و بریم رفیس نگر چه خبر دهتومان بابا سلیمانی مثل دفع قبل روی صندلی نشسته و با کسی حرف میزنه که نمیبینیمش ظاهرا دکتره اگه جشن روسی هم به اندازه برگزار می شد. مجبور نمی شدید تارا رو تعطیل کنی این همه ازا جسمت هم داغون کرد. بازم تحکید میکنم، از این به بعد فقط استراحت می کنی و قرصت رو سر وقت میخوری. اگه یه دونشم سر ساعت نخوری ممکنه گوش میدی چی میگم؟ آقای سلیمانی؟ فرشته در آشپزخانه مشغول کاره و دختر فیروزه سر سطلی مشغول بازی با آب کفه فیروزه از دریچه آشپسخونه اونو دیده عصبی وارد آشپزخانه میشه و پشت دست نیلوفر میزنه بلندش میکنه نیلوفر تو قلعه چیکار میکنی؟ ها؟ چیکار بتونیم؟ بیا بیه چه آدم هفت گفتم بیه چه آدم هفت گفتم چنی چونی بکنیم آنجا؟ ای فیروزه سرشو بین دستانش میگیره و گریه میکنه بعدش از کاش خارج باشه فروخم میاد و با یک دست آبکش پیازها رو روی آبکش گوجه ها میذاره کاهورم محکم میکو به روی پیازها. بحشت رو بذاری کنونی آبکشه رو برده بیا ای بمیتون هزی که بگی پوریشر سر بچه خالی میکنی دیوار کتا تر از این پیدا نکردی خراف این دیوار رو سرکش شر نه ترسیر نمیشه تا بیس روز دیگه انشالا رو سر هممون خراب میشه روحت میشه یهنم فررخ با همون یه دست آبکشو برداشته بود که افتاد ایخ اون به یه نازمینم که مخ مخ مخ به باز دارم چکرم خرمش کردی با سنون دست چودا ایاشی که نکردن کردم ارزشو نداشتی فررخ سیلی محکمی به فرشته میزنه فرشته آبکشو روی زمین میکوبه نیلوفر بغل میکنه و ناراحت از آشپزخونه خارج میشه میسه توی وانهت که شیشش پایینه نشسته لباسشو عوض میکنه و با مادرش صحبت میکنه الافه چی شدم مادر جان گوشی گوشی هی hey میگه الاف شدی الافه چی شدم بابا جان دوشنبه دیگه کانال دو ساعت 9 نشان میده خب نقشه اصلی نیستم ساهر بازگران که هستم خب، قدم به قدم، گام به گام من به قول میدم سال دیگه ای بخ من میلیون کمتر دستموز نگیرم آن مادر و خب بابای فلان فلان شده محصومه چرا آقا دنبال من بیفته. دخترشم به میده. میدهه من گیره نمیکنم تو داره گیره میکنیم نه، من حالم خوبه مادر جان یه دفیقای خوبی دارم اینجا نه بریم کمک میکنه نه حسنه خور، مادر من حسنه نخور. گیر نکنه. گلادات قربان برم گیر نکن، مادر من چش. قربونت تو برم. خداحافظ. شیشه ماشین رو می‌بنده و پیاده میشه. دفتر سینمای ما برای فیلممون نیاز به یه تالار پذیرایی داریم. بله. که فرمت رو دیدم و اونجا خوندم که توی تالار پذیرایی کار میکنیم بله میتونم بچه های تولید اونجا رو بازبینی کنن بله بیان قدمشون سرچش. سر چشم اصلا متعلق به خودتانه مشکلی نیست اون وقت اگه مورد قبول بود بله میتونم به خودت هم یه نقشی بدم که تو همون تالار میگذاری خیلی ممنون دست شما در نکنه بله خیلی من شما هستم فقط بد حالا که اومدی یه تست گیری من بدی ببینم چطور می از بابت چهره و اینا که اصلا نگران نباشید چون من یه حالتی داره صورتم مثلا ریشه پروفوسوری که میذارم یه جوری میشم بعد عوض که می‌کنم دوباره یه جوری خوب ولی شما حتما باید تست رو داشته شما اتاق بغل بر زحمت بگشید حسن آهای حسن برای تست من شما تلفن خودتان میتونم حالا شما تست رو بدید بعد می‌بینیم خیلی ممنون قربان سلیمانی با تلفن صحبت میکنه و بیژن روی میز رو تمیز میکنه. قلمدان رو از جاش تکون میده و سلیمانی عصبی اونو رو برمیگردونه. پنج بار عمدن جای اون رو عوض میکنه که سلیمانی عصبانی اونو روی میز میکوبه و صحبتشو ادامه میده. عجب کردم درست گرفتیم. تو وقت خلاص تعطیله. سلیمانی لحظه برو میکشه از پشت میز بلند میشه و طرف آشمازخانه میده و از توی دریچه با فراغ صحبت میکنه او سوختگی هم اطلاع رو تو نمیفهمی؟ بس من سوخته دیگه سخته ما نیست؟ چرا زنبت کمکت نمی کمک میکنه وارد آشپس خونه میشه کمکت میکنه که تادیک میسیونه. آشپز های دیگه هم یه رختایی تادیک میسیزنه آشپز های دیگه گه نفرن من یه نفری؟ بس زنه چی؟ چی؟یه حقوق نمیگیره اگه قرار بوده بگیره ما می خواهییم بهمونیم همین شما بهتر کارتو تو درست انجام بدی چشم زنه کجاست؟ اینجا هست فرشته. فرشته فرشته که نیلوفر بغلشه توی آشپزخونه میاد بچه رو روی زمین میزن فروخت میره تو شهر کار خودت انجام نمیدی. فرشته حرفی نمیزنه و فقط نگاه میکنه. برفکره. فرشته میره و سلیمانی از آشپزخونه خارج میشه. در راه فیروزه و نیلوفر رو میبینی. بیعتونا از کنارش رد میشه. به بیژن میرسه که داره می رو مرتب و تمیز میکنه. مقابلهش میره می برمیادید سر جاش نمیذارید. مثل اینکه جای تو رابطه توی مدت چند کار کارگارا کردم. تو این 20 روزم میتونم این کارو بکنم. بیژن سرش رو پایین میندازه و چیزی نمیگه سلیمانی در فکر پشت میزش میشینه بیژن به کارش ادامه میده فیروز و نیلوفر توی سالون برمیگردن نیلوفر پیش بیژن میره و فیروز لیوان چایی رو گلیخته برای سلیمانی میبره روی میز میذاره قندون هم کنار لیوان میذاره و میره سلیمانی عصبی قندون روی میز میگوه این بچه چرا قبول میخوره؟ خب جمعش کنجور دسته با فیروزه حرفی نداره بارا دیگه فرشته هم از پس خونه از دریچه اونا رو دارن نداره فرشته فرشته مکسی میکنه دل خوره و بلخره به کمک فرشته برمی برمیداره و کمک فرشته دیگی رو از روی اجاق برمیدارن و زمین میزنن. سلیمانی پشت میز نشسته که میسان با موهای سیخ سیخی وارد تالار میشه سلام بایسبینا کجا بودی خرید بودم نشون میده گوجه و پیاز و سبزی و چیزای دیگه تو خجالت نمیکشی این چه قیافه‌ای با خود درست کردی شبیه سبزه اد شدی کارگر خوبی ریختی میگرده ماشین مال کار نه مال تفریح حالا ازت گرفتم دادم به بیژن آدم میشی بارو گروتو کم کان بیژن و فیروزه که نیلوفر و غلشه مشغول تمیز کردن میزها هستند و اونا رو دیدن فیروزه نیلوفر زمین میذاره و آرام در گوش بیژن صحبت میکنه خوبه بوانه تا تو باش تا جا خواب ندارم پیرزن سیگار فروش کیف و چارپایشو بر و از تالار خارج میشه میسه هم ناراحت جلوی آینه خودشو نگاه میکنه بیژن از کارایمون اون دل خوشی نداره پیرزن سیگار فروش در کیف دستیشو باز میکنه تا کار روزانشو شروع کنه نمای سیاه پشت کیف رو میبینیم و حالا یک مراسم ازاداری دیگه توی تالار سلیمانی. مهمون ها طبق معمول مشغول خوردن هستن و کارگر ها مشغول کارنه فیروزه میخواد سینی رو توی آشپسخانه ببره که یه موتوری جلوی تارار توجهش را جد میکنه بیجن هم متوجه میشه بشقابایی که دستش هست رو روی سینی فیروزه میزنیم خشمگین به بیرون میدوه به طرف موتوری مزاحم و چ... موتوری فرار میکنه و شاهد شهایدی ازال هست بیژن داخل بیژن میز سلیمانی میری بیژن چاوری شب شده محله سکونت فیروزه وانٹ سر همون کوچه متوقف میشه بیژن سری از پشت وانٹ پایین میپره فیروزا پیاده میشه و نیلوفر رو هم پیاده میکنه بیژن سوار میشه و فیروزه و نیلوفر وارد کوچه میشن وانٹ میره فیروزه نیلوفر رو بغل میکنه که در همین موقع دو مرد جوان وارد کوچه میشن فیروزه از ترس میدوئه میثم و بیژن با وانٹ برمیگردن سری پیاده میشن آقای بنفش فیروزه و نیلوفر توی خونه میرن و بیجن و میسم با دو پسر جوون درگیر میشن فیروزه که میفهمه اونا درگیر شدن از خونه بیرون میاد. درگیری بالا میگیره چهار پنج نفر دیگر به کمک ارازل اوباش میان و با بیجن و میسم درگیر میشن میخواد اون رو جدا کنه نمیشه و بالاخره یکی از اوباش با چوب شیشه جایوانت وانت میش کرد فروخ با یک دست به سختی برای خودش و همسرش کف تالار جا برای خواب اما فرشته که حسابی دلخوره در جایی دیگه برای خودش جا باز میکنه یتی که فرش قرمز باریک میندازه که اونجا بخوابه فروخ که میفهمه فرشت دلخوره بالش رو براش میبره و خودش میره که بخوابه. فرشته بالشو هم بر می داره و سرشو بر زمین می و می خوابه. خونه فیروزه دسته میسم آسیب دیده بینی بیژن خون اومده و حالا هر دو نشستن فیروزه با زن صابخونه درد دل میکنه کنه یکی از همسایی آمن دیده؟ من صبح میرم شب میم همشم به فکر این بچم دیگه باید چی کار کنم؟ شوهر کن؟ اگه شوهر کردن علا کیه؟ ها؟ علا کیه؟ همهشون لنگه همه این همه مرد ریخته کیشونو قبول کن جوری هم خودتو خلاص کردی اما. من که یکیشو داشتم بیروزه اگه نخواه شوهر پانی باید از این خونه بری به خود عرضون تر چه پیدا فیدا نمی گشتی؟ همسایه حرف مبزیاد میزنم. تو که باور نمیکنی. فیروزه یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. شوهر من که تا حالا چیزی به تو نگفته. فیروزه لحظه میمونه. زن صابخونه نگاهی به خونه خودشون میکنه. شوهرش پشت پنجره ایستاده که سری کنار میره و پرده رو میکشه. زن صابخونه عصبانی به طرف خونه خودشون میره و درو در میبنده. فیروزم دم در خونش ایستاده فیروزه توی خونه میره و عشق ریزان به دعوای زن و مرد سابخونه گوش بده از... میسم با دبی بنزین توی ماشین میریزه و بیژن توی ماشین با در باز نشسته پاهاش بیرون سیگار میکشه و با موبایل میسم ور میره جواد سلیماندی چی میدی؟ نگه دعواه کردیم ما؟ میشه تو خود اتقاطی نکنی؟ تو گفت بانه میگیره میده به تو توی مانده میسه هم در دبایی بنزین رو میبنده و پشت بانه تی میزنه پارکینگ داری؟ پارکینگ هم کجا بوده؟ این رو میدوزدن امشب با این چیشه به جهنم من امشب این میخوابم خوبه بانه جای خوابیده نه؟ مجبو باشی همه جای خوابیده راضی جای خنده ویژن توی ترمینال غرب با یک ظرف یک بار مصرف قضا منتظر مزفر شاگرد راننده است که مزفر با ظرف یک بار مساف قضا رو یک کجا این چه بنزین که باشه قولون گازلی بده میسانم آره با مشابه آقای واحد همین جو می‌خواد تو خوبانه می‌خواد من اصلا تو بله علی بله بخمه من گفتم شما نه بخواهت گفتم من نمیام ها بده من بهم مظفر صرف قضا رو برمی داره و سیارا رو میچنگیده بیژن سوار اوتوبوس از این از این میآوا خدای وکیلی ما رو بهش نگو نه بابا خیال دار تو اصلا به روش نمیام برو برو خیال تو ها برو برو از این روز بعد میثم و بیژن توی وانت با شیشه شکسته به طرف محله کار می ره. اگه میخوای به سلیمانی بگی من حرفی ندارم ما ما رو اینجوری دیدی تو مگه بانه تو نمیخوای بابا رو ببودیه بانه تو میخوایم چی کار من یه جا خواب دیگه میشه خودت دیم سلیمانی پشت میزش نشسته و با وسواز کاغذهای روی کازیه رو مرتب میکنه پسر جوان نوازنده پشت شیشه دیده میشه با حسرت به سلیمانی نگاه میکنه ولی سلیمانی حواسش نیست. پسر آرام وارد تالار میشه از پله بالا میاد و دم پله ها آکاردون رو از پشتش بر میداره تو منگه حرف فالید نمیشه؟ گفتم میخوام اینجا رو تحقیق کنم یه بخش آکاردون رو پشتش مینزه و میره میسم و بیجن از راه میرسن. بیژن به سمت آشپسخونه میره و میسم جلوی میز سلیمانی باز هم ناخداگاه قلمدان و جا, جا میکنه سلیمانی هم عصبی دوباره سر جاش بر میگرد سلام دفته دکتر داریم دیر نشه. سلیمانی بلند میشه و از کتش سویچ ماشین خودش رو به میثم میده کت میپوشه و هر دو از تالار بیرون میرن سوار ماشین میشن و راه میافتن پسر جوون پشت سر اونا وارد تالار میشه از پله بالا میاد. بیژن که سیگار به لبشه اونو دیده پیشش میاد. تو بهت بر نمیخوره این هی میدازدت میرون؟ نه بیژن پوکی به سیگارش میذاره. اینجا کار گیره نمیاد. اینجا دنبال کار نیستم بشه یک گفی به هم بزنیم میسم دم در مطب دکتر روانش مرس و با تلفن همراهش موسیقی گوش می کنم میاد و میسم سمت ماشین میری هر دو سبان میشه فرشتو فررخ دوی آشپسخونه کار میکنن که بیجن پیش اون آمده میگم آقا این سولیمانیچ کسو کاری نداره زنی، بچهی، ننهی، داشی، خواری کم چرفی زده چرا بابا یه زنی داشت قدیما بلش کرد بخ اون بل نکرده که این بل کرده حالا که اینا هم دیگر بر کردم نمیدونم من هنوز اون مقا اینجا نبودم حالا خیلی وقت میشی آقا بیان کمی این اگه بچه داشت بازم اینجا رو میبهرد شاید داره شادم با تیپا بیام خب وله هر ببینید هر کسی چی هست؟ میگم هم پسرشم همون پسر نوازنده میگم بعدم آروم آروم ببینم این اصلا کی هست؟ کی بوده؟ اصلا اون قضیه چی بوده؟ میگم آقا بجوم شاید به دردم بخوری؟ پسر جوان میره و بیژن به سیگار کشیدنش ادامه میده فیروزی چادر به سر اومده و جلوی در تالار با سلیمانی حرف میزنه. فاروق و فرشتم هم اینجوری موندن اینجا من نمیخوان پیمونم فرمت تا آخر ما وقتی شوهره به رحمت خدا رفت اومدی گریه کردی گفتی کار بهم بده بچه هفرش ماشده گفتم ازیاد میکنه گفتی از شیر که گرفتمش ایش میذارم ایش جایی کرده این کارو تو هم کردی با <تصفيق> حرکت سر میده آمان جاذ کجا بیارم بهت بدم به خودم مبارری طبقه بالا برای من برسی مع تو فکفاام می نداری خبار پیششه ونا؟ میخواخه اینجا از همه جا بهتره. بیروز نیلوفه رو بغل میکنه و به خودش میفشاره و وارد تالار میشه مستقیم توی آشپزخونه میره که بیژن و میسم و فرخ و فرشته اونجا هستن میسم از آشپزخونه خارج میشه و به طرف در خروجی میره آماد آبا سلیمانی بچه ها در ما پار کردن یه زنه دیگی بردار میسام، تو نه، می‌گیش بیا. آلا بالا. ماشینشو روی پارک کردم. اونجا سایه بود، گفتم پارک کنم. هروارش تو پاک پارک. چاش. بفهم. میسام با مرد شاکی میره. سلیمانی باز میخواد موردی رو توی دفترش وارد بشه. لبه کاغذ با وسوا صاف می‌کنه و می‌نویسه میسام وانت. ادامه می صحبت‌های کارگر رو پیشش می‌اسه. آره جلیلی پسر اردوت بگه. سالمانی؟حتتی هست؟ مادر شد زدنه. چرا؟ یه کاری کنی پسر خودش بگی بهتره. تو هم بچه رو بزار کنیم پیشم از صداش سالمانانی رو اذیت نکنه <تصفيق> فرشته نیلوفر بغل میکنم گفته. مثلم با وانت میاد؟ یه تیکه کارتون مقوعی بزرگ روی شیشه چسبمون که شکستی دیده نشه. شاال حله مشکل نیست بله بله بله فقط آقای ض من که بیام دیالوگ های نقشهده بگیرن هما اون نقششه که قول دادیم بله اون که حالیمه چشم اون صحبت میکننلیمان بیا کارتونو کنال میزنه و شکست گیر رو می بین ال صداقط تو سلیمانانی نگاهی به میث میکنه نگاهی به شیشه سوئچ و بر و میره. فیروزه زمین رو تمیز میکنه و بیژن سندگاه رو آماده میکنه سلیمانی پیش بیژن میره و سویچ وانتو رو روی میز موذره و بیژن سویچو بر میداره ولی نیستم دوار شروع سلیمانی بر میگرد تو خیلی بیجا کردی که دوای کردی تا شیشه عوض نکرد سویچو بشت نمید من من رواندگیم خیلی حرف نداره. اه... قبلا که خوب بلند دادی بیژن نگاهی به میسم که توی آشپزخونه ایستاده نیندازه می آخه میسم آنه تو لازم داره باست چی لازم داره لازم داردی باست پیرزن سیگار فروش مشغول کاره و مردی سیگار می‌کشه. مجلسی برپاست باز هم ازاداری فرخ مشغول کباب کردن جوجه و گوجه است دست تنهاست فرشته کمی دورتر اونو نگاه میکنه فروخ سیخ جوجه کبابی رو برمیاره انتهای سیخ رو به سختی زیر می میگیره و با دست جوجه ها رو توی بشقاب خالی میکنه بقیه رو هم همینطوری آماده کرد. فیروزه دوتا بشقاب غذا میاره توی آشپزخونه. خونه فرشته به فر غذا میده غذا شبه خودم فرشته نیلوفر بغم میکنه امان فرش میکنه تو به فراغ فرز فیروزه میره میزم گرد نگاهی به فرشته میکنه و میره فرشته به فکر میره توی وانت با شیشه شکسته حالا بیژن راننده است فیروزه و نیلوفر جلو نشسته و میسم عقب وانت روی وسایل فیروزه نشسته فیروزه هم وسایلشو آورده تا طبقه بالای آقای سلیمانی زندگی کنه و بیژن کمک میکند تا وسایل پایین بیاره رخت خواب بیژن بر میداره فیروزه میخواد بگیره بیژن اونو زمین میذاره نیلوفر رو به بغل فیروزه میده و فیروزه و نیلوفر توی خونه میرن و بیژن رخت خواب و بر میداره فیروزه چادرش و روی برای پهن میکنه بر میگرده و به کمک نیلوفر بقیه غی رو میشونه و نیلوفر با آب و کف بازی میکنه اتاقه که فیروزه با وسایل زیاد شروع به جمع جور فروخ فرخ و فرشته هر کدوم یک طرف میز زمین میدراز کشیدن و با هم صحبت میکنن حف نمیدونی تو سرم چی میگذره. فرشته ناراحته تو خیال میکنی بعدم میاده یه چهار دیواری برای خودمون داشته باشی اگه نجنبیم به خودم همینم که هست دستمون میره فرخ نگاهی به فرشته میکنه ببینی چی میگه عرشته اما جوابی نمیده و چادرش رو سرش میکشه هموشاد پسر جوون نوازنده پیش وانت یه پشت وانت میاد یه نفر اون پشت خوابیده بیدارش میکنه میسم؟ دستی برای پسر تکون میده پسر جوون بیژن هم که جلو خوابیده بیدار میکنه و خودش توی ماشین میشینه میسان از پشت وانت پای پنجره نمیاد بیژن سیگاری روشن میکنه و به پسر نگاه میکنه. روی تختش دائم جا به جا میشه. آروم و قرار نداره. دست زیر سر. اما بازم مناسب نیست. بالشو به بالای تختکی میده و به حالت نشسته سعی میکنه که بخوابه. شبخونان شبخونان اینماره روز بعد فروخ سر دیگ نشسته آبکشو برنجم کنار دستشه با یک دستش فقط کار میکنه البته کمی سخت فرشته روی پیشخون نشسته و لیوان چای به دست فقط به فروخ نگاه میکنه قندی در دهان میذاره و میخواد جعه بنوشه که چشمش به فیروزه میفته که اسب بازی خریده و توی خونش میره به فکر میره نگاهی به فروخت میکنه کنه چای مینوشه لیوانو کنار میذاه و به کمک فروخت میره آبکشه برنج و بر میداره و همه رو توی دیگ خالی میکنه فروخ با کفگیر برنج رو خالی میکنه و نگاهی به فرشته میکنه و نفس عمیقی می‌کشه. اتاق فیروزه هنوز کمی به هم رخته است نیلوفر با اسب با بازیایی که مادرش خریده سرگرمه فیروزه آروم از اتاق بیرون میاد و درآ می بنده میز سلیمانی رو با دستمال تمیز میکنه کنه رو کنار میزنه تمیز میکنه می سر سرجاش البته نکامه. سلیمونیه متوجه میشه ولی کاری نداره. حالا قلمدون. سعی میکنه بعد از تمیز کردن درست سر جای خودش قرار بگیره. با همون دستمال لیوان چای سلیمانی رو هم تمیز میکنه و توش فوت میکنه. و سلیمانی فقط کمی حرص میخوره. بیژن به بیرون نگاه میکنه و میره. فیروزه وارد تالار میشه. سلیمانی به اون نگاهی میکنه. بی جندش سیگار می کشه و با تلفن همراهش صحبت میکنه. آره. پسر جوان نوازنده هم دورتر می نوازه آره دیگه چه آگهی که بقید بگه آقا عروسی می گیرم اینجا قیمت مناسب با اینجا عربا نمیدونم باقدر دمید کتا باشی کن باید خودم بگم خیر خیر ممنون خدا سیگارش سیگارشو خاموش میکنه و به هیچ سمت تالار میره نیسا هم با وانت از راه میرسه و جلوی تالار توقف میکنه شیشه جلو رو عوض کرده آفرین از ماشین پیاده میشه بی به اون رسیده سلیمانی از داخل اونا رو دیده بیژن و میسم وارد تالار میشن بیژن مستقیم سر کارش میره و میسم سویچ وانتو پیش سلیمانی میبره میذره روی میزو میره میسم میسم برمیگرد سلیمانی سویچو میذاره جلوی میسم از بخشیدتش میسمم بی کلامی سویچ بر و میره سلیمانی نگاهی به پسر نوازنده که اونور خیابون مشغول نواختنه میندازه. نفس عمیقی میکشه باز هم مجلس ازایی برپاست فرخ قضاها رو آماده کرد فیروزه میاد غذا ببره که فریاد نیلوفر از طبقه بالا اونو متوجه خودش مکنه به سرعت از آشبازخونه خارج میشه فرشته پیش فررخ نه فیروزه قبل از خروج از تالار روسریش سریش رو صفت میکنه تا به ساختمان مجاور تالار یا منظر جدید بره سلیمانیم اونو میبینه و هیچ نمیکنه و در فکر فقط نگاهش میکنه. فرشته با سینه نهار سلیمانی از راه میرسن آقا سلمانی بله میخواییم بریم بالا غذاتونو بیارم من عمره که غذا ما همی پایین خوردم و سه همین چیزاست که اعصابتون اینقدر به هم ریخته دیگه. مجالس عزاداری رو میگه. سلیمانی کمی فکر میکنه کنم. وزرشم اینجا فرشته سینی رو میذاره و میره. صدمنی به جوجه کباب و برنج و نوشابه و سالاد و ماست توی سینی خیره می و فکر میکنه. فیروزه به بچه رسیدگی کرده برمیگرده توی تالار. سلیمانی در حال چلوندن لیمون روی به اون نگاه نکنه میسم با قالب بزرگ یخی سمت وانت میان چندین قالب دیگه هم بار وانت کرده یه خوب پشت تا به تلفانش باسخ بده الو سلام علیکم اول تا خوبه خیلی ممنون بله من با شما میخواستم صحبت بکنم سرشان خیلی شلوغ بود شما نگران نباشین لوکیشن تاروال حله بله بله بله چش چش. قربان شما خداحافظ آقا یه پنششتا قالب یخ دارم میخوام برای این کوچه پشتی چرا میدی؟ ستون میزم کمی فکر میکنه وانت مال خودم نیست دایی جان ببخش شرط منم بدونم گفتم وانت مال خودم نیست ببخش مرد میره و میزم پشت وانتون میبنده سوار میشه و میره بانت. شب شده و موقع خواب میزم توی ماشین میخوابه و بی دوباره پشت وانتون سلیمانی از بالکن خونهش اونا رو میبینه اینجا کارت میخوان. روز بعد سلیمانی پشت میزش توی تالار به تلفن جواب میده به سر نوازنده هم اون طرف خیابون آکاردون بزنه بله نه آخرتان موقع تحتیل عصبی و دست به سینه میشینه بیژن بیژن میاد بردار بردار این کیه. اگه تالا تا رو خواستم بگو تحتیله بردار بردار بردار نخیل میگن دیگه آگه ایزا میگن تحت... خودتر پشت میدی تحتیله دیگه چی ما میخوایم تحتیل کنیم این آگه ایشی ها رایی بکشین. بکش. برام پسر از بیژن بی دو شاخه تلفن از پریز میکشه. بیژن میره تا پسر نوازنده رو صدا کنه. سلیمون توی فکره بیژن با پسر حرف میزنه و پسر به طرف تالار میاد. میسم و بیژن خودشونو مشغول کار نشون میدن. پسر نوازنده پیش سلیمون میاد. ریشته از دور نگاهی به اونا میکنه. تو لحظین چتا تنظیم شده میتونی هر روز بیای اینجا بزنی. آخر شب سیگaret میخوره. پسر خیلی خوشحال میشه. همینطور به سلیمانی ظلم میزنه. میسم و بیژنم خوشحال اونا رو نگاه میکنه سیگار فروش کار. فیروزه با دوتا بشقاب از آشپسخونه خارج میشه که باز فریاد نیلوفر رو میشنبه بیژنم شنیده از آشپسخونه بیرون میاد فیروزه دوتا بشقاب غذا رو به بیژن میده رو رو سفت میکنه و از تالار دوون دوون بیرون میره سلیمانی بیرون رفتنش رو نظاره میکنه فرشته که هوای فیروزه رو داره سری خودش رو به سلیمانی میرسونه. بله سالیمانی از جوش بلند میشه کوتاهشو بر می‌داره. نادرمانی در ساختمون بغل تالار رو در واقع خونه خودش رو میخواد باز کنه که همون موقع فیروزه بیرون میاد. روسریشو سری مرتب میکنه و میخواد بره که فیروزه فیروزه میسته بخشه تنم برمیگردم زر بچه تو بیار پایین فیروزه هم خوشحال هم نگران. داخل ساختمون میری و درم میبنده خونه سلیمانی بیا فرشته با سینی غذای آقای سلیمانی وارد میشه نگاهی به اطراف میکنه همه چی مرتبه اولین باره که پاش به اونجا رسیده چه خونه خوبی داره آقای سلیمانی اصلا فکرشم نمی کردم که این جیرو بشه دیگه قدیمی شده سولیمونی رو سندلی ساعتش رو تازه. حتماً اینجا را خراب کنی. بذارش اینجا. فرشته که تا حالا دم در بود وارد میشه و سینی رو روی میز میذره و بر میگرده دم در که. ببخشید آقا دیمون میشه یه چیزی بگم. عصبانی نشید آهام همینجوری یهویی به فکرم رسید. چی؟ هیچی بگو فرشته که میخواست بره دوباره بر میگرده شما چرا زن نمیگیریم سولیمانی چپ چپ به فرشته نگاه میکنه ببخشید من باید برم چرا یه حرف زدی؟ اشتباه کردن نخواه بدارم چرا یه حمیشه فکری راستش خونه زندگیتون رو که دیدم فکر کردم فقط جایی نیه زن خالیه دیگه از من گذشته که زن میگیرم آه چرا؟ مگه چی کار مخواییم بکنیم؟ تو آلا نتونستم با خودم کنار بیام خیلی خوب میشه ها خونه زن زندگی بچه تو کیسین داری؟ نه آره کی؟ فیروزه به همراه فرشته سر یک تخت با هم ظرفا رو میشورن فیروزه اخم کرد بگو کااضری من بدبق اول اینجا رو نبدم اول از همه به فکرم خود تو بچهتم در روزیگه مدرسه ب این بشه خودت خونه زندگی نمیخوا من که اگه جایی تو بودم معطلش نمی که فرشته بلند میشهم نیلوفر هم کنار اونا داره کف بازی میکنه و کمی هم کمک میکنه فرشته عصبی قشقا های رو توی تشت آب و کف هست ویژن دم پله ها تقریبا منتظر جوابه. تا میفهمه فرشته داره میاد بالا میره تو آشپز فرشته فرشتی تقریبا بالا اومده و قبل از رفتن به آشپز کنه میزم هم توی آشپزخونه پیش بقیه میده فروخ هم هست نشد آه معلوم نمیشه خب چی نماتون دست رو دست این کاری نمی کنه. شما یه تکونی به خودتون بدیم دیگه پسا این با چیشون به هم نکنه که شما افتادی واسه حالا با فکر کرده مثلا برترازی گیرش می آه گمپوزر میکنه به کیو میگی؟ اونو میگی اینو بیروزه دیه میروزه دیه عطفار منو ب برو حرف بزن شد روزیش خب میرم؟ بیژن میری بیرون فیروزه آینه های رو تمیز میکنه سلیمانی هم خوشت میزش به اون نگاه میکنه فیروزه شیش پاکون میزنه نیروفن هم بقل دستش ایستاده. نگاه های سلیمانی روش سنگیره میکنه. دست از کار میکشه. نیلوفر رو زیر بغل میزنه و به طرف زیر زمین میره فرشته با آکشی از بیرون میاد. فیروزه دستمال گردگیریشو محکم توی آبکش می خوبه و نگاه چپی به فرشته می‌کنه و به سرعب با بچهش به زیر زمین میکنه. به این می گفته نم به خدا فکر کردم خوشحالش میکنم گفتمم خودش تشبخت میشه هم بچهش چه قیمتی نم ندیدی که خونه زندگی شد فروخ با یک دست آبکشو از فرشتی میکره سولیمانی موارد خطای کارگراش رو از توی دفتر مرور میکنه پسر جوون هم اونجاست و کمی دورتر مشغول نواختنه سلیمانی توی فکره فیروزه بچه به بغن از زیر زمین بیرون میاد بیژن از توی دریچه آشپسخونه اونا رو نگاه میکنه. آمینا عروسی بزنی. فرش خوشحال به اونها نگاه میکنه. تلفن همراه میسمه. علو. سلام گوشی, گوشی. سلیمانی که میبینه میسم بیکاره به سمتش میاد. شما اگه همه و پول قلنبه هر بهش بدین راضی میشه. اصلا نگران نمیشه. فقط اون نقشه که بود گفتیم به ما. بله، خیلی من خدا. بابا حسین ơi سلیمان من یه سوالی برام پیش اومده شما اگه یه پول قلنبه‌ای گیرتون بیاد که بر بلكه اینجوری دیرتر بفروشی شما بدتون میاد؟ آره چرا؟ رجونت داره این فزلیه بتون نمیاد برو به با کارت برس میثم میره و بیژن در حال پوست کندن پیاز اونا رو میبینن فیروزه لباس نیلوفر رو مرتب میکنه و دوباره توی زیر زمین میره بیژن هم دم پلاهی زیر زمین میان لحظه مکس میکنه و پایین میره سلیمانی هم اونو میبینه که توی زیر زمین میره و به فکر فرو میره توی زیوزمین فرشته میشینه بیژن از راه میرسه دم در میسته بقیه وقتی نگاه میکنم من حالم بد میشه سرم داغ میشه دستم سرد میشه همیشه همینطور بودم از اول وقتی با خدا بمر سعید از زندون اومدیم بیرون دفعه اول که دیدیم اول من در زید ولی اون اول پرید جرا ناموس رفیقمون ناموس ما شد این خودی شد شدم ولی حالا بقدر میخوام خودم نگاهد کنم نمیدونم بایدم حسابی اینجور وقتا چی میکن شلمانی به دادت نمیخوره عشق توی چشمه ای فیروزه جنب شده تو ایفی جواب من یک کلمه بگو خلاص کن بی میره و فیروزه به فکر فرو میره عشق میریزه و نمیدونه چیکار کنه <تصفيق> بعد از یک مراسم میسن رو خالی میکنه فیروزه سندلیا رو تمیز میکنه نیلوفرم اونجاست بیژن یه پارچه تمیز برای فیروزه آقونه فیروزه عصبی از بیژن دور میشه بیژن ناراحت شده سلیمانی از دور از پشت میز اینها رو میبینه نگاهی به نیلوفر فر میکنه نگاهی هم به میسان میکنه که با جدیت داره رو تمیز میکنه یه جوری تمیز میکنین انگاری تالار تازه باز شده کار تموم شده توی آبدارخونه بیژن پهروی فیروزه است اما حرفی نمیزنه و میده فیروزه اما حسابی در فکره دستمال شده نشونه حالا همه چیز مرتب شده نیلوفر روی میز نشسته و فیروزه غذا دهنش میکنه فرشته جلو میز سلیمانی است خودش که خیلی راضیه آقا سلیمانی ولی اگه شما خودتونم صحبتی باش بکنین سلیمانی نفسی میکشه و نگاهی به فیروزه میکنه فیروزه هم نگاهی به سلیمانی میکنه و سرشو پایین میندازه بلند میشه بشقا به غذای نیلوفر رو بر میداره بچه رو میکنه و میره توی زیرزمین. زمین فرخ همونو میبینه سلیمانی از جا بلند میشه و سمت زیرزمین میره فرشته به طرف میسم میره که مشغول حساب کتابه و بیژن نگران از پایان ماجرا به رفتن سلیمانی نگاه میکنه سلیمانی وارد زیر زمین میشه. فروخ جعب خالی نوشا بر بر می داره. فرشته به طرف زیر زمین میره مرد بنگاهدار توی تالار اومده آی سولیمانی الان کار داره بهش بگو بیت بنگاه کارش داره. مرد میره و میسم کاغذاشو جمع میکنه فرشته که توی پلهای زیرزمینه تا صدای پالی سلیمانی رو میشنبه میدوی توی آشپزخونه که نفهمه داشته کمی فضولی میکرده سلیمانی از پله ها بالا از پشت کمن سمت بیژن میره آقا ایب بومبایی آمده بود کارتان داشت بی برای خودش میره حالا مقابل بیجن قرار میره خیلی خاطرشی می خواهی کی؟ خب تا طاقت نی میره توی زیر زمین خیالم راحت خب پس مبارکه تو فکر من نیست چی؟ نیمه شبه بیژن پشت وانت و میسم توی وانت جلوی تالار خابیدن سلیمانی از در خونش بیرونه سراغ بیژن میره که موبایل میسم توی دستشه و خوابش مرده سوریمانی موبایل رو از دست بیجن میگه بیجن بیدار میشه و خودشو جمعا جمعا سلام بلا کن باشید بیاد بلا میسمو هم بیدار میکنه و سوریمانی خودش میگه میسم و بیژن حالا توی خونه سلیمانی دراز کشیدن و پاهاشون جمعه میسم پاهاشو دراز بود دراز کن چه؟ یه دیگه پاهاشون دیگه بیجنم دراز بود هر دو چشو واسی میاد روز بعد بیژن مشغول تمیز کردن کف تالاره سلیمانی کتشو میپوشه و از تالار بیرون میره فروخ پیش بیژن میاد و میبینن که سلیمانی به طرف بنگاه میره بیژن سیگاری به فروخ میده و براش روشن میکنه به فروشه کار همه همه تماماها پسر جوونم اونجاست نمیتونم بگم ها؟ من این رو میشه بهش گفت آقا من بگم افا بابا جانم مادرت خودت برو بهش بگو قالش بکندیه چه لج بازی میکنی؟ با دروز دیگه بیستانه ها میسم شیش نوشابه ها رو توی جبه خالی میذاری بسر جوان مستوزنی سلیمانی توی خونه روی تخت دراز کشیده بیژن پیشش میاد ببخشید آیه سلیمانی چیه ما میتونیم عروسیمون رو تو همین تالار بگیریم سریمانی کمی فکر میکنه بیژن میخواد بره اما لحظه برمیده شما آدم خوبی هستی چه تو رو و میره سلیمانی با چشمان خیس به فکر فرو میره سلیمانی بدون کت دم در تالار استاده برای بنگاهی اون طرف خیابون که با شخصی مشغول صحبت دست تکون میده وارد تالار میشه فرشه رو میبینه که میخواد با بادکنک تالار رو تزیین کنه آرام از پله های دم در بالا میاد فیروزه جلوی سلیمانی سبز میشه آقای یه جایی پیدا از اینجا میره بی کلامی سمت میسم میره که اون هم مشغول تزینه نگاهی هم به پسر جوون نوازنده میکنه بی جنم بادکنک باد میکنه تالار تقریبا تزین شده فروخ جعبه خالی نوشابه رو سر جاش میذاره که سلیمانی بهش میگسه نیلوفر کلای سفید فروخ دستشه و به اونا نزدیک میشه فرشته در سکوت نیلوفر رو بغل میکنه روی میز میذاره فروخ دستی به سر بچه میکشه سلیمانی هیچ حرفی نمیزنه کتشو میپوشه فروخ کلای خودش سر نیلوفر میذاره سلیمانی میره فرشن پشت سرش نوازنه جهان پیش فروخ و نیرو فر میاد بیژنم هست بگو تو روحت سلیمانی توی بونگاه روزنداری نشسته آقای سلیمانی خریدارو ما پیداش میشه سلیمانی بغزالو سر به زیر میدازه بهش بگی ناید ناید چرا دست و به فروش نمیره قرار داد بستیم چشماش پره عشقه و دائم پلک چشمش میپره میدونم خسارتشی میدم آخه چرا؟ خوبه؟ خوبه قرصی رو به دهن میذاره عروسی بیژن و فیروزه پسر جوان آکاردون میزنه فرخ با یک دست شیرینی تعارف میکنه بنگاهدار محلم هست یه و سیگار فروشم اومده بیسم خیلی خوشحاله و حرکاتی انجام میده تعدادیم وسط تالار هستم و اونام حرکاتی انجام میده فروخ شیرینی رو جلوی فرشته میگیره که نیلو توی بخرشم حالا شیرینی جلوی عروس و دامه هر کدومی که برمیده و حالا نوبت آقای سلیمانیه که گوشه آرام روی صندلی نشسته شاید این اولین عروسیه که تو اون شرکت میکنه سلیمانی هم شیرینی برمیاره اما نمیخوره و میده به میسان. میسان میره و با اجازه آقای سلیمانی بیژن رو بلند میکنه و میاره وسط. ادی هم برف شادی میزنن و حالا بیژن شروع میکنه. سلیمانی یهو سرش گیج میره. چشماش، چشماش تار میبینه. همه مشغول خوشحالی هم و حواسشون اصلا به اون نیست فیروزه هم حواسش به بیژنه سلیمانی دنبال قرص توی جیبش میگرده نیست از روی صندلی بلند میشه کمی تلو تلو میخوره فیروزه نگاهی به اون می‌ندازه. سلیمانی میره و بیژن خسته میاد و پهلوی فیروزه میشینه اونم متوجه رفتن سلیمانی میشینه به پسر میگه پسر لحظه این میکنه ویژن آکاردمون از پسر میدیره پسر جوون پشت سر پدرش میاد. فروخ و بقیه مهمون ها پکر شدن جان تو و هنگشنگره بخوام حال کنیم دیگه عروسی ویژنه جان من جان من بیا بینم امون ای تم بمیره بخوام جان من بخوام بایی جان بچه خاموش کن بیا بینیش می هم فضا رو میشکنه جینگ و جینگ ساز میاد از بالای شیراز مییابد سازدوم غم بخور که چراغا رو خاموش میکنن و فقط نورای زرد و قرمز و نارنجی است که کمی تالا رو روشن میکنه پسر جوون دم خونه سلیمانی بود و سلیمانی حالا وارد خونه میشه و درو در میبنده آروم میاد تا به اتاق سلیمانی میرسه آویزای رنگ, و رنگ جلوی اتاق رو کنار میزنه و وارد اتاق میشه سلیمانی با کت و شلوار آروم روی تخت دراز کشیده و دستاشو روی شکمش گذاشته پسر کمی نگران به سلیمانی نزدیک میشه لبه تخت میشینه یه دست سلیمانی رو بلند میکنه دست یخ کرده سلیمانی از دستان پسر رها میشه و بغلش میافته دمپایای سلیمانی نامرتب کنار تخته و خودش خودش که با چشمانی باز و به سقف دوخته شده با این جهان خدا حفظي ميگام بله. اينه دنيا ديگه همدیگان عزیز و ارجمند فیلم بیست رو با هم دیگه شنیدیم محصول سال 1387 کشورمون که در جشنواره 27م فیلم فجر هم شرکت کرد در این جشنواره جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مکمل زن و مرد رو از آن خودش کرد و در جشنواره های دیگه هم جوایز دیگه ای رو نصیب خودش کرد امیدوارم که این فیلم هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه اما عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم صدا بردار خوب ما جناب آقای علی حاجی نوروزی مثل همیشه لطف داشتن و این برنامه رو صدا برداری کردند تعیین کننده و سردبیر این برنامه فرشاد آذرنیا بود و بنده حقیر هم که به عنوان نویسنده و گوینده در خدمت شما بودم بهرام سروری نجات هستم امیدوارم عمری باقی باشه و سعادتی داشته باشیم تا بتونیم در رادیو فیلم دیگه در خدمت شما باشیم تا اون موقع خدا نگهدار